کتاب داستانهای هزار و یک شب جلد دوم بازنویسی و کوتاه شده هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال نوبت چاپ اول مهماه 1377 چاپ اقبال زبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ بهمن ماه 1377 گوینده افسانه وحید نیا تکثیر کننده بهرام حامدیگو با بررسی مهنوش فاضل صفحه 568 حال ما قایق شاهزاده و جواهر فروش را دنبال می قایق شاهزاده اشتباهاً در نقطه آنها را پیاده کرد که درست مقابل در ورودی به قصر خلیفه بود شاهزاده و جواهر فروش از شدت ترس بر خود لرزیدند و گفتند مقصد ما اینجا نیست و اشتباهاً ما را به این نقطه آورده اید سبت دوباره در قایق نشستند و به نقطه مورد نظر راهنمایی شدند شاهزاده و مرد جواهرفروش فروش در محل مورد نظر خود از قایق خارج شدند و به سوی خانه رفتند شاهزاده وقتی به خانه خود رسید بسیار خسته بود داخل بستر افتاد و از هوش رفت خدمتکاران او را احاطه کردند و کنشیدند تا شاهزاده را به هوش آورند گروهی از آنان گرد جواهرفروش فروش جمع شدند و پرسش های گناگون حال و وضع شاهزاده و علت قش کردن او به عمل آوردند جواهر فروش هم که نمیخواست توضیحات کافی در این مورد دهد به آنها گفت این از وقت مناسبی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها نیست بهتر است در فکر به حوش آوردن شاهزاده باشند خوشبختانه بعد از اندک زمانی شاهزاده به حال عادی برگشت و همه خدمتکاران و جواهرفروش فروش خوشحال شدند گرچه شاهزاده از حالت بیهوشی خارج شده بود ولی هنوز آثار زعف در وجود او باقی بود و نمی توانست لبان خود را به حرکت درآورد و پاسخ پرسش ها را با علامت و حرکت سر می‌داد. و تا فردای آن شب این رنجوری و ناتوانی ادامه داشت و صبح اول وقت جواهر فروش از نزد شاهزاده رفت خانواده جواهر فروش که از شب گذشته یعنی از وقتی که جواهر فروش به همراه مرد ناشناس رفته بود تا این ساعت بیخبر بودند، دچار تشویش و نگرانی شدند و فکر میکردند که حتما حادثه بدی برای او اتفاق افتاده است. همسر و فرزندان جواهر فروش تمام شب را با اندوه و دلهوره گذرانده بودند و همین که جواهر فروش را دیدند بسیار شاد شدند ولی حس کردند که چهره او کاملا با چهره از رفتنش فرق دارد. فکر کردند که بیخوابی و خستگی او را به این شک درآورده است. جواهر فروش دو روز تمام در خانه خود بستری بود. روز سوم فروش که حس می‌کرد نیروی از دست داده را بازیافته است، از, از بستر خارج شد و به دیدن یکی از بازرگانان ثروتمند رفت. پس از گفتگوی بسیار با آن بازرگان، متوجه شد که بانویی از مقابل دکان بازرگان به او اشاره می‌کند. او بلا فاصله پی برد که آن بانو همان کنیزک مخصوص است و حد سرد که حتما پیغامی برای او آورده است. بسیار خوشحال شد و از بازرگان خداحافظی کرد و در بازار راه افتاد. کنیزک جواهر فروش را دنبال کرد. اما جواهر فروش که نمیخواد کسی او را در بازار با کنیزک مشغول صحبت ببیند بر سرعت خود افزود و کنیزک هم با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. و چند بار هم جواهرفروش فروش را صدا زد. ولی او اعتناایی نکرد تا سرانجام وارد مسجدی شد و کنیزک هم در مسجد به او پیوست. جواهر فروش و کنیزک از دیدن یکدیگر بسیار شاد شدند و جواهر فروش درباره حملهی راهزنان به خانه اش و اینکه بر سر همراهان که آمده است پرسش هایی کرد. کنیزک هم به همون میزان علاقه مند بود که از سرگذشت جواهر فروش در شب حمله راهزنان آگاه شود. بعد از آنکه جواهرفروش فروش ماجرای فرار خود را شهر داد، کنیزک هم سرگذشت فرار خود و دو تن همراهان خود را چنین تعریف کرد. در صدا که راهزنان مسلح را دیدم، فکر کردم مموران خلیفه هستند که از آمدن شمس نهار به آن خانه آگاه شده و به دستور خلیفه برای کشتن شمس و نهار و همراهانش حمله کردهاند. بعد که فهمیدم آنها راهزن هستند، به اتفاق دوندیمی شمس نهار، از دالانهای خانه به خانه همسایه رفتیم، مردمان بسیار خوبی بودند و از ما پذیرایی کردند و مهربانی بسیار نشان دادند و شب را در آنجا گذراندیم. هنگام صبح از آنها تشکر کردیم و به محلی که شسا نهار را در آنجا جای داده بودند رفتیم و با تعجب زیاد متوجه شدیم که در آن محل نبود و از بیخبری سرنوشت دو داده بسیار ناراحت شدیم و به سوی قش مناجعت کردیم. وقتی به قصر وارد شدیم، سایر ها تعجب کردند که چرا بدون شمس و نهار برگشته ما هم به ها گفتیم بانوی ما نزد یکی از دوستانش که بانوی سرشناسی است مانده و هر وقت که بخواهد مراجعت خواهد کرد. ندیمه ها هم با سخنان ما قانع شدند. اما نگران بودم و تمام روز را تا شب با ناراحتی گذراندم و موقع شب که از در مخفی قصد بیرون رفتم و دجله را نگاه کردم، قایق را با قایقش مقابل قصد دیدم او را صدا زدم و به او گفتم در امتداد رودخانه با قایق رفت آمد خون و اگر بانوی را با این مشخصات دیدی او را به اینجا بیاور من و ندیمه دیگر همچنان با پیتابی در انتظام ماندیم و در حدود نیمه های شب بود که دیدیم قایق آن نزدیک شد و دو مرد و یک زن در قایق او بودند. من به سوی قایق دویدم و, شمس و نهار را دیدم. و بدون درنگ به او کمک کردم تا از قایق پیاده شود زیرا توانایی کافی برای راه رفتن نداشت در آن لحظه در گوش من گفت یک کیسه هزار درهمی طلا به آن نگهبانی که در قایق هستند بده من هم بلا رفتم و کیسه ی هزار درهمی را به آنها دادم سپس با کمک دو یه دیگر شمس نهار را به داخل قصد بردیم کلیزک همچنان ادامه داد چمس نها را به خوابگاهش بردیم و لباس هایش را تغییر دادیم و لباس راحت پوشاندیم و در بستن نهادیم و شب را استراحت کرد ولی من و داندیمه دیگر لحظه او را تنها نگذاشتیم. هنگان صبح بانوان قش میخواستن برای دیدن او بیایند ولی گفتم خسته است و احتیاج به استراحت دارد. میخواستم با این ترتیب تا آنجا که امکان دارد بانوی من نیروی خیش را باز یابد. شمس و نهار از ناراحتی درونی و عشق شاه ساده به کلی اشتهای خود را از دست داده بود. نه غذایی میخورد و نه آبی مینوشید. من با اصرار تمام یکی دو قاشق شراب کهنه به او نوشاندم و آن در تقوییت او موثر بود و با التماس و خواهش بالاخره توانستم او را آماده سازم تا اندهی غذا به دهان خود بگذارد. کنیزک گفت عجب چه نهار پرسیدم چگونه توانسته بود از دست راهزنان رهایی یابد همین که را شنید ناراحت شد و گفت چرا این پستش را میکنی؟ و دوباره مرا با اندوه و ملال روبرو میسازی؟ آن وقت آهی عمیق بر و گفت ای کاش راهزنان مرا کشته بودند و به همه هایم پایان میبخشیدند. افسوس که زنده ماندم و باید همچنان به غم فراق گرفتار باشم من در برابر این سخن به او گفتم هر کسی در زندگی دردهایی دارد که مردم از آن خبر ندارند ولی یکی از راه‌های تسکین دهنده هر دردی بیان کردن آن و درد دل کردن با دوستان است در این هنگام و نهار گفت وقتی راهزنان شمشید به دست حمله کردند من فکر کردم قصه‌کشانم را دارند و آماده بودم که به اتفاق شاهزاده کشته شوم ولی رئیسان ها دستوراتی به راهزنان داد و آنها مشغول جمعآوری اساسی و اشیاء قیمتی شدند و آنها را در کیسه هایی جای دادند و کیسه ها را روی دوش گذاشتند و حرکت کردند و من و شاهزاده را هم همراه خود به خانه ای واقع در آن سوی دجل بردند بعد که به آنجا رسیدیم یکی از راهزنان که ظاهرن رئیس آنها بود از من پرسید تو کیستی؟ من پاسخ دادم که رقاصه هستم و بعد از شاهزاده همین پرسش را کرد او هم گفت که بازرگانی است که به دیدن جواهر فروش آمده. آنگاه رئیس راستانان گفت معمولا رقاص ها لباس های به این گرامبه نمیپوشند نمی و این همه جواهرات و زیور قیمتی ندارند. هر شما از بیان حقیقت خود داری می کنید. بعد ایکی از گفت من جواهر فروش را می شناسم. مرد درست است و برای من هم خدمتی انجام داده است. من به خانه دیگر او که در آنجا زندگی می میروم و او را به اینجا میآورم. او حقیقت را خواهد گفت اما ما به این دو نفر هیچ خونه آزاری نخواهیم رسانید. روز بعد جواهر فروش را به آن خانهی که ما در آن بودیم آوردند و او هم تمام حقیقت را گفت. آنگاه راه از من معذرت خواستند و به پاهای من افتادند. بعد هم به سراغ شاه ساده که در اتاق دیگر بود رفتند. در اینجا شمس نهار تمام داستانی را که جواهر فروش برایم بیان کرده بود تعریف کرد و در حالی که به خاطر شاهزاده گریه می کرد گفت نمیدانم بر سر او چه آمده است خدا کند سالم باشد بعد شمس نهار به من دستور داد دو کیسه طلا که در حق کدام هزار سکه طلا باشد بردارم و به خانه جواهرفروش فروش ببرم و به او بدهم تا جبران زیانهایی که به خاطر او و شاهزاده به او وارش شده بشود و در زن از سلامتی شاهزاده آگاه شوم وقتی بانوی مهربانم سخنش به پایان رسید من هم برای تسلی آرامش خاطر او آنچرا که جواهر فروش برای من گفته بود برای او بازگو کردم و گفتم که شاهزاده هم سلامت است و شمس و نهار را نصیحت کردم که بیش از این بیتابی در عشق نکن زیرا ممکن است دوباره ناراحتی تازه‌ای به وجود آید اما شمس نهار به من گفت جلوی زبانت را بگیر و هرچه میگویم بیچون و چرا انجام ده كنیزک مخصوص كیسههای طلا را به مسجد آورد و به جواهر فروش داد جواهر فروش ضمن سپاس فراوان گفت به بانویت بگو سخاوت و مهربانی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد ضمنا با جواهر فروش توافق کردند که از این پس مسجد محل ملاقاتهای آن دو باشد تا پیامها و نامهها را رد و بدل کنند. جواهه فروش با خوشنودی فراوان به خانه برگشت زیرا شمس نهار پول بسیاری به او داده بود که انتظار آن را نداشت و همین که می دانست کسی از حضور شمس و نهار و شاهزاده در خانه متعلق به او اطلاعی ندارد راهزنان هم و وفاداری ادا کرده اند و به علاوه راهزنان هم با مردم عادی رفت آمد ندارند جواه فروش خسارت ظرفها و اساسیه را پرداخت و سر و سامان تازهی هم به هر دو خانه خود داد و اشیاء تازهی خرید و خاطرش کاملاً آسوده شد و صبح روز بعد برای دیدار با شاهزاده به خانه او رفت خدمتکاران جواهر فروش را به خوابگاه شاهزاده بردند در آنجا جواهر فروش دید که شاهزاده با حال بیماری در بستر افتاده و چشمانش بسته است و بسیار ناتوان و رنجور به نظر میرسد جواهر فروش سلام کرد و جلو رفت و دست او را به نشانه دوستی و محبت در دست گرفت و او را به نام صدا زد شاهزاد چشمانش را نیمه باز کرد و با صدای ضعیفی که به سختی شنیده میشد از سنگینی حال و نامناسب بودن اوضاع خود چند کلمه ای گفت قوت سخن گفتن نداشت اما با وجود این دست جواهر فروش را در دست گرفت و آن را فشرد تا قچناسی خود را از زحمات او نشان دهد جواهر فروش با مشاهده ناتوانی شاهزاده گفت چرا خود را به چنین وضعی کرده ای؟ چرا غذا نمیخوری به فکر فكر تندرستی خود نیستی خدمتخاران از سخنان جواهرفروش جرأتی پیدا کردند و جلو آمدند و غذا آوردند و جواهر فروش توانست با التماس و اصرار شاهزاده را وادار به خوردن غذا کند بعد كه شاهزاده رمقی در پیکر رنجور خود یافت از دردسری که برای جواهرفروش پدید آورده بود هزاران بار پوزش خواست و گفت که زیان وارده را می پلدازد. آنگاه درباره شمس نهار پرسشی از جواهر فروش کرد جواهر فروش را که کنزک مخصوص به او گفته بود برای شاهزاده تعریف کرد و به او گفت که شمس نهار نهار رحملگران سلامتی و تندرستی و وضع روحی شاهزاده است سپس شاهزاده با کمک جواهر فروش و خدمتکاران خود از بختر بیرون آمد و به سراغ صندوق خود رفت. و دستور داد چندین صندوق را که انباشته از گراموهایترین اشیاء کمیاب و ظروف طلا و نقره بودند به خانه جواهرفروش فروش ببرند. جواهرفروش فروش با سپاس فراوان به آگاهی شاهزاده رسانید که شمس نهار بیش از اندازه لازم به او کمک مالی کرده و دو هزار سکه طلا به او پرداخته است. ولی با وجود این شاهزاده گفت من هم به سهم خود مدیون هستم و باید به خود را بپردازم، و به خدمتکاران گفت سندگه ها را به خانه جواهر فروش ببرند. شاهزاده سپس در بستر نشست و از جواهر فروش خواهش کرد نزد او بماند. و با حضور خود او را از فکر قصه دور سازد. جواهر فروش هم تا پاسی از شب در خدمت شاهزاده بود تا او به خواب رفت و خود به خانه برگشت. فردا صبح دوباره جواهر فروش نزد شاهزاده رفت. او همچنان در بستر بود، و با دیدن وی گفت ای دوست من بیا بنشین میخواهم چند جمله با تو درد دل کنم همانطور که میدانی هر چیز یک مقصود نهایی دارد در مورد عشق و دلباختن مقصود و هدف رسیدن دو دل داده به یکدیگر است و در مورد من تو خود شاهد بودی که دو بار با مشوق خود رو برو شدم ولی هر بار پیش آمدی ناگهانی مانه این به ما گردید بنابراین عاشق بخت برگشته ای هستم که امید کامیابی از مشروع را از دست دادم و به این جهت ادامه زنده برای من هم بی حاصل خواهد بود از سوی دیگر اگر برابر دستورات دینیم خودکشی گناه نبود خود را از بین می بردم. اما مهم نیست زیرا میدانم که مرگ دیر یا زود به سراغم خواهد آمد و مرا از رنج زندگی رهایی خواهد بخشید در اینجا شاهزاده خاموش شد و به گریه و ناله کردن پرداخت جواهر فروش برای دور کردن ذهن شاهزاده از این گونه گفتگوها، صحبت شمس نهار را پیش کشید و گفت: من باید بروم، چون هر لحظه ممکن است کنیزک مخصوص برای دادن پیامی از سوی بانویش به مسجد برود. شاهزاده هم موافقت کرد و گفت: کنیزک بگوی که به شمس و نهار بگوید، چون من در انتظار مرگ هستم، در اولین دم زندگی به یاد او خواهم بود. و با عشق او زندگی را بدرود میگویم. گویم فروش هم شاهزاده را ترک کرد و به سوی خانه خود رفت جواهرفروش فروش در خانه خود در انتظار ورود کنیزک بود که کنیزک با حالتی براشفته و سراسیمه وارد شد نفسانا به نزد جواهرفروش فروش آمده گفت دیگر زندگی شمس و نهار و شاهزاده و من به پایان رسیده است جواهرفروش فروش با عجله و شتاب پرسید چه اتفاقی رخ داده است کنیزک گفت شمس النهار یکی از دو ندیمه ای را که همراه او به خانه شما آمده بودند، به خاطر خلافی که از او سر زده بود، تنبیه کرد و او هم سخت رنجیده خاطر شد و چون در قصر هم باز بود فرار کرد و اطلاع داریم که رازه اشقی بانوی را با شاهزاده به آگاهی یکی از ها که سمت نگهبانی داخلی را دارد رسانیده و نگهبان هم به همان ندیمه پناه داده است به مال آن ندیمه، ندیمه دیگر هم فرار می کند و در قصر خلیفه می رود و در آنجا در پناه خلیفه قرار می گیرد و ما اعتقادمان بر این است که او هم همان راز را عیناً به آگاهی خلیفه رسانده است زیرا پیش از اینکه من بتوانم اینجا بیایم بیست تن از خاجه های نگهبان خلیفه به قصر شمس و نهار آمدند و او را به قصر خلیفه بردند این راز را به شما گفتم تا بیدرنگ شاهزاده را از آن آگاه کنی که هر ترتیبی را برای خود و شمس نهار سودمند میداند پیشگیرد پیش گیرد. کنیزک این را گفت و با شتاب تمام فرار کرد و رفت شاهزاده با شنیدن این سخنان از شدت رنج و ترس به صورت مرده متحرکی درآمده بود اما با این همه به خود جرأت داد و از جواهر فروش چاره کرد جواهر فروش هم گفت هیچاره ای بهتر از این نیست که هرچه زودتر خود را از دسترس خشم خلیفه دور سازی و باید بدون لحظهای درنگ خود را به شهر انبر در جنوب بغداد برسانی و گروهی از خدمتکاران و اسبهای سواری را که لازم میدانی همراه ببری من هم همراه تو خواهم آمد شاهزاده هم فورا دستوری صادر کرد و همراهان او آماده شدند و خودش هم به مقدار کافی پول و جواهر در جیبهای خود جای داد و بعد از خداحافظی به مادرش با همراهان خود راه افتاد آنها تمام روز را اسب تاختند تا اوایل شب کارمان سرایی رسیدند و برای رفع خستگی در آنجا به استراحت پرداختند. هنوز اندک نیاسوده بودند که راهزنان بر آنها تاختند و جنگی میان آنها در گرفت و تمام همراهان شاه ساده کشته شدند و خود او هم تا آنجا که میتوانست جنگید و عاقبت چاره ای جز تسلیم ندید. را هم تمام اساس و جواهرات و پول او را دزدیدند و لباسهای او و جواهر فروش را از تن آنها در و هر دو را لخت و اوریان در آنجا رها کردند و اسبهایشان را همراهی خود بردند شاهزاده از جواهر فروش پرسید به نظر شما در این شرایط چه گامی باید برداشت جواهر فروش پاسخ داد آنچه بر سر ما آمد همان افسنیدش بوده است و پروردگار میخواسته که از مصیبتی به مصیبت دیگر گرفتار شویم بدون آنکه حق ناشی داشته باشیم. ما باید از هر پیش آمدی که رخ میدهد خوشنود باشیم ولی باید از اینجا برویم. چهارزده گفت که هر پیش آید برایم فرقی نمی کند اگر خلیفه بخواهد مرا خود این همون چیزی است که در انتظارشم زیرا من توانایی زنده بودن را ندارم و بعد از شمس و نهار زندگی برای من هم مفهومی ندارد. چه بیت در همین لحظه که صحبت می کنیم، شمس نهار زنده نباشد و به دستور خلیفه کشته شده باشد شاهزاده و جواه فروش به راه افتادند و بعد از اندک زمانی به مسجدی رسیدند و داخل صحن مسجد شدند در آنجا پیرمرد روشندلی به آنها خوشامد گفت و آنها هم حجوم راهزنان را تعریف کردند پیرمرد آنها را به خانه برد و از آنها پذیرایی کرد و مدتی پس از شام نزدانها نشست و با نرمی و مهربانی سخن گفت سپس همه برای استراحت به بسترهای خود رفتند هنوز بدتی از لحظه استراحت نگذشته بود که جواهر فروش به سراغ صاحبخانه رفت و او را به بالین شاهزاده که در لحظه های آخر زندگی بود برد نفس های به شماره افتاده بود آنها مرگ او را از نزدیک می‌دیدند. آنگاه شاهزاده به جواهر فروش گفت خوشحالم که از دنیا میروم و تا علت خوشحالیم را می‌دانی.» فقط یک تعصف دارم و آن این است که چرا در آغوش مادر عزیزم که سراسر عمر با نرمی و مهربانی به من عشق ورزیده و مایهٔ دلخوشی او بوده انجا نمی نمیسپارم من همواره به مادر مهربانم عشق میورزیدم تعدیدی ندارم از اینکه مادرم نتوانسته با دستهای خودش چشمانم را ببندد و در گور جای دهد ناخشنود است ولی عبی ندارد چون از تو میخواهم به او خبر دهی تا جنازه مرا به بغداد حمل کند. و مرا در آنجا به خاک سکارت و با عشقهای خود گورم را آبیاری کند و برایم آرزو کند تا روانم در آن جهان شاد باشد آنها شاهزاده روی خود را به سوی پیرمرد روشن ضمیر کرد و از مهبانی او سپاس گذاری کرد و خواهش کرد جنوزه او در آنجا بماند تا مادرش آن را با خود به شهر بغداد برگرداند. سپس روی برگرداند، و جان به جان آفرین تسلیم کرد فردای آن شب جواه فروش به همراه نخستین کاربان به بغداد رفت و خود را به خانه شاهزاده رساند. وقتی در دربان و خدمتکاران ارباب خود را همراه او ندیدند، سراغش را گرفتند و او گفت باید بانوی خانه مادر شاهزاده را فورا ملاقات کند و خبر مهم را به آگاهیش برساند. بلافاصله مادر شاهزاده با ملازمان خود در میان تالار نمایان شد و جواه فروش با صدای لرزان و از غم گفت ادوان به شما بردبار باری و مقاومت دهد و سایه شما بر سر ما و سایه خدمت باشد. با اندوه بی پایان و دلی خونین خبر در شاهزاده را به آگاهیتان می مادر شاهزاده بلافاصله فریادی کشید و شیون زنان گفت خبر مرگ جگرگوشه هم را برایم ما مادر شاهزاده و همه خدمتکاران و سایر بانوان خانه بی اختیار به گریه افتادند، و بر سر خود زدند و شیون همگی در فضای تالار منعکس گردید مادر شاساده پس از مدتی گریستن، از جواهر فروش شرح آخرین روزهای زندگی فرزندشان جوگه شد و جواهر فروش هم به طور کامل سرگذشت روزهای آخر زندگی شاساده را بیان کرد و همچنین درخواست شاساده را از مادر خود به آگاهی ویرستانی به ویژه سخنان امام شاهزاده را پیش از لحظه مرگ برای مادر جادیده بازگو کرد روز بعد مادر شاهزاده همراه غلامان و ندیمه ها و افراد دیگر به شهر انبر رفتند و جنازه فرزند را با انجام مراسم ویژه و احترامات شایستهی ای به سوی زادگاه او بغداد حرکت دادند جابه فروش پس از انجام مراسم خاک خاکسپاری شاهزاده مخانی خود رفت و نزدیک خانه کنیزک مخصوص را دید که در گوشه ای ایستاده و منتظر اوست. بعد از سلام و پرسی کنیزک از حال وضع شاهزاده جویا شد. جواهرفروش که دید کنیزک همش گریه میکند، پرسی مگر تو از خبر در گذشت شاهزاده آگاهی نداری؟ کنیزک با شگفتی بسیار گفت: مگر شاهزاده فوت کرده است؟ آنگاه جواهرفروش داستان غم مرگ شاهزاده را بازگو کرد و دوباره خودش به گریه افتاد. و کنیزک با مشتهایش بر سینه کفت و شیفن سرداد و گفت شاهزاده و بانوی من آشقهای واقعی بودند شاهزاده طاقت نیاورد که پس از مرگ مشروخ زنده بماند و اینک این دو دل داده هیچ مانعی در راه وسال یکدیگر یک دیگر ندارند زیرا قبل از مرگ پیکر آن دو مانعی برای رسیدن آنها به یکدیگر به شما میامد و اکنون دیگر پیکری وجود ندارد و خداوند روح آنها را به هم پیوست در این هنگام بنا به درخواست کنیزک جواهر فروش چگونگی درد و اندوه شاهزاده و داستان مرگ او را برایش تعریف کرد و بعد کنیزک هم خود درباره مرگ بانوی مهربان و بزرگوارش چنین گفت خلیفه بعد از پی بردن به رابطه‌ی عشقی شمس و, و شاهزاده شمس و نهار را به قصد خود آورد و شخصم را به طور جداگانه از آن دو ندیم بازجویی کرد شما حتما انتظار دارید خلیفه بعد از شنیدن سخنان ندیمه های شمس و نهار توفانی از خشم در ذهن و دلش برپا شود و شدیدترین دشنامها را به او دهد و بدترین کیفرها فرها را درباره او اجرا کند ولی خلیفه چنین نکرد و با چهره گشاده با شمس و نهار روبرو شد و به او گفت من نمیتوانم توانم سیمای تو را اندوخی و افسرده ببینم تو خود میدانی دلبستگی و عشق من به تو حد و اندازه ای ندارد حتی در چنین لحظه بیش از پیش تو را دوست میدارم تو در قلب و روح من مقام والایی داری من می‌دانم که تو دشمنانی بسیاری داری که در نزد من علیه تو بدگویی ها كردهاند ولی سخنان بدخواهان تو کمترین اثری در عشق من نسبت به تو نداشته است اینک مانند همیشه که نزد تو میآمدم مرا شاد و خشنود كن آنگاه بانوان نوازنده به نوافتن و خواندن پرداختند و خوردنی یا نوشیدنی آورداند اما شمس و نهار فقط از خلیفه سپاس گذاری کرد و فکرش در جای دیگر بود و غم از چشمانش نمایان بود. خلیفه از تخت خود برخاست و به نزد او رفت و دست او را گرفت و در کنار خیش نشانید. اما چند دقیقه بعد او با زندگی بدرود گفت بدون معنی که بدون گفتن سخنی سرش بر سینه خم شد و سپس روی موب به حال بیهوشی افتاد. خلیفه و ندینه ها تصور کردند مانند دفعاتی گذشته بعد از مدتی به حال عادی برخواهد گشت ولی افسوس که جان سپرده بود و هرگز به هوش نیامد. خلیفه گریه کرد و مدتی در کنار او مفوت و خاموش با و اندوه میگریست و قبل از آنکه که او را ترک کند و به قصد خود برود دستور داد تمام ادوات موسیقی و سازها را بشکنند و فرمان خلیفه فورا اجرا شد. من هم تمام شب تا صبح را در کنار پیکر بیجان بانوی خودم نشستم و طلب آمرزش کردم و دعا خواندم و هنگام صبح آن پیکر عزیز را با عشقای خود شستشو دادم و کفن پوشاندم و بعد در آرامگاه باشکوهی که خلیفه در زمان حیات او برایش بنا کرده بود با حضور مشایعت کنندگان و تشریفات و احترامات ویژه‌ای به خاک سپرده شد بعد از این سخنان کنیزک مخصوص پیشنهاد کرد که جنازه شاهزاده را هم می در همان آرامگاه شنسان نهار و در کنار او به خاک سپرد زیرا است که دو دلداده با وفا و واقعی را بعد از مرگ در کنار یکدیگر دیگر قرار دهند جواهر فروش از این پیشنهاد تا حدودی شگفتی نشان داد و گفت امکان ندارد خلیفه با آن موافقت کند کنیزک پاسخ داد بعد از در گذشت نهار خلیفه کلیه یک کنیزان او را آزاد کرد و برای هر کدام از آنها مقرری ماهانهی منظور کرد و مرا هم که محرم او بودم به سرپرستی آرامگاه شمس نهار برگماش و اینک من می توانم با توجه به اینکه خلیفه از عشق بانوی من به شاهزاده آگاه بوده است جنازه شاهزاده را در سحن آرامگاه شمسون نهار دفت کنم بدون آنکه خلیفه با این امر مخالفتی نماید. پس سخنان کنیزک مخصوص جواهر فروش از او خواست تا مقبره شمس نهار را به او نشان دهد که او فاتحی بر سر مزار او نثار کند وقتی جواهر فروش به نزدیک آرامگاه رسید مشاهده کرد طبقات مختلف مردم از هر دسته و گروهی از نقاط دور دست شهر بغداد برای زیارتگاه آرامگاه شمسون نهار گرد آمدند و از زیاری جمعیت نمی به مقبره شمسون نهار نزدیک شود ناصر از همان فاصله دور برای وفاته‌ی خان و طلب آموردش کرد و گفت احساسات مردم و اهالی شهر این فکر را در ذهن من بیدار می‌کند که این دو عاشق که در زمان زندگیشان لحظه لحظه‌ای از اندیشیدن به هم دریغ اند بعد از فوتشان هم باید در کنار یکدیگر آرام گیرند آرامگاه دو عاشق ناکام در نزدیکی شهر بغداد قرار گرفت من همراه راه تا دروازه‌ی شهر آمدم و در آنجا ما با مادر شاهزاده که با گروهی بسیار می‌خواستند شاهزاده را به خاک سپارند روبرو شنیم آنگاه کنیزک به مادر شاهزاده گفت اجازه فرمایید